یک گیلاس کنیاک برای خودش ریخت این گیلاس دوم بود یکی هم برای من ریخت مال خودش را کمی چشید و روی میز گذاشت بعد کمی فکر کرد چه داشتم میگفتم نمیدانم چه میخواستید بگویید اما من دلم که همینجور که حرف میزنید ادامه بدهید اینطور بهتر برای من مجسم میشوید میخواستید بگویید چه احساسی به شما دست داد وقتی از کارگاه او بیرون آمدید بله بله همین است باور کنید که من بعدها مخصوصا از وقتی از تهران رفتم اقلا هزار بار درباره این چند دقیقی که از لالهزار به خانه برگشتم فکر کردم آخر ببینید من که او را نمیشناختم، من که از اخلاق خصوصی او هیچ اطلاعی نداشتم فقط چیزی که فهمیدم این بود که او از کارهای من خوشش نیامد از کار هیچ کس هیچ وقت تعریف و تمجید فوقلاده نمی کرد. او درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت می کرد. او اصلا عادت نداشت به چیزی بلکه آنکه که خیلی هم مورد پسندش قرار می گرفت ابراز علاقه کند. من این را نمی رفتار او را با خود جور دیگری تعبیر کردم. یادم نیست. به نظرم به خودم گفتم، معلوم می شود چیزی بار من نیست این را میخواستم بگویم رفتار او در زندگی من تاثیر قاتل کرد در راه مدتی فکر کردم گاهی آدم نادنسته دنبال چیزی می رود وقتی آن را پیدا نمی کند اصلا خودش را گم شده احساس می کند به خانه که آمدم دیدم جوانکی که آن روزها موی دماغ من بود در اتاق مهمان خانه من نشسته است جوانکی بود خوشیکل با اندام متوسط. تازه دکتر شده بود. سبیل میگذاشت که مسنتر جلوه کند. با اتومبیل عقب من میآمد و گاهی از او حتی خوشم هم آمد اما ریختش عاشق پیشه بود و مرا از او بیزار میکرد. شاید اگر آن روز او با من چنین رفتار نمیکرد با این پسرک زندگی میکردم. خوشبخت می شدم یا نمی شدم هم به زندگی داشتم. مثل همه مردم بودم. متش... متفقید می چی می‌خوام بگویم رفتار او در کارگاه نقاشی در زندگی من تأثیر قاطع کرد. چه میگفتم پسرک در اتاق نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدم با دهنی که برای من خیلی سنگین آمد پرسید چرا معطل کردی؟ ما قرار نبود امشب فلان جا بریم. با چنان قیزی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی ندیدم. از به راستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمانی که به مناسبت توداد یکی از دوستان مشترکمان ترتیب داده شده بود برویم. مادرم که وسیده فزت و سلطان از طرز صلوک من با او اطلاع حاصل کرده بود چند روزی به من زد مگر با مرد قریبه اینجور رفتار می کنند مگر بی خودی مردم را از خود می رنجانند لگت به بخت خود زدی دختر جنیدم پفه سرک به یکی گفته بود آدم نمی داند با این دختر چجور باید رفتار کند گاهی دلش می خواهد با کار شکمش را پاره کند یک ماه با خودم قهر بودم ملاقات با او را فراموش کردم اما همانطور که گفتم یک چیز گمشوده ای داشتم سابقا کار من همش خرید رنگ و قلم و تواد و کاغذ و مداد و سپایه بود برای خودم آنچه ممتاز و گران قیمت بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد میکردم. اما در این یک ماه نقاشی داشت از یادم میرفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید بالاخره نمیخواهی روزی پیش ماکان نقاش بروی؟ پدرم همیشه قبل از شام چند گیلاس عرق میخورد و وقتی گیلاس های دوم را رو سر حال بود و این بهترین وقتی بود که میشد با او صحبت کرد. از گیلاس چارم به بعد دیگر مست بود گفتم آقا جون رفتم خب چه شد؟ آقا جون این خودش چیزی بلد نیست چه میگویی دختر آقای سارمون ممالک از کارهایش خیلی تعریف میکرد او که دیگر خبره است، مگر ندید چه تا قشنگی در خانهش دارد آقا جون از من بپرسید هیچ چیز سرش نمی شود، اصلا کارهای مرا نگاه نکرد، نفهمید از خودش هم چیزی در کارگاهش ندیدم، چه آدم متکبری از خود رازی بود پدرم دیگر حرف نزد، وقتی سر اخوری نمی خواست با کسی حرف بزند یک صفحه روزنامه را که دست من و یا مادرم بود بر می داشت و با آن نگاه می کرد. اما من نگذاشتم آقا جون، مادرم سرش را بلند کرد و من نگریست او به خوبی می وقتی من با این لحن شروع می کنم، حتما تقاضایی دارم. این را هم می که پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خرج نمیداد. مخصوصا وقتی که خودم را پیش او لوس می کردم. پدرم پرسید چیه؟ من را بفرسید و فرنگ یاد بگیرم. اینجا که کسی نیست پیشش بشود کار کرد. پدرم از زیر عینک چشمهای ریزش را ریزتر کرد نگاهی به من انداخت اما چیزی نگفت مادرم که آن طرف کرسی نشسته بود و داشت قیدیان میکشید گفت خوبه خوبه این را دیگه از کجا یاد گرفتی؟ فرنگ به چه دردت میخورد به قول خودت آن که از فرنگ برگشته چه تهوهای است که تو بشوی دختر را چه به فرنگ رفتن پدرم سرش را از روی روزنه بلند کرد و گفت اگر پسر بود عیبی نداشت آخر آقا شما چرا این حرفها را میگویید چرا دنبال میکنید کی دخترش رو تک و تنها به فرهنگ فرستاده تنها چرا باشد مگر سرهنگ خودمان سرپرست محصلین نظامی در پاریس نیست پرسیدم کدام سرهنگ پدرم گفت سرهنگ آرام مادرم گفت پسر خابر خانوم نوه امموی آقا جونت. پرسیدم ندیدمش چرا؟ آنه چهار پنج سال است که با آنجاست شاید یادت نباشد پدرم دیگر حرفی نزد عینکش رو از چشمش برداشت. به من چشنک... چشمکی زد و گفت فکرش رو میکنم دیگر دست بردار نبودم در قیبت مادرم چرخ پدرم رو چنبر میکردم تا اینکه که بداخره به فرنگ رفتم چه چیزها دارم به شما میگویم نمیدانم گفتن اینها لازم است یا نه اما اینطوری که گفتم برای خودم بهتر است دلم میخواهد همهش رو تعریف کنم بگویید همه اینها برای من مفید است مگر اول به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده اما حالا دیگر زندگی شما هم علاقه من شدم و میبینم که تارپود زندگی شما در هم بافته شده تا کسی شما را نشناسد استاد را نخواهد شناخت درد همینجاست اشتباهی که من خودم هم میکنم من را هیچ کس نشناخته خودم هم خودم را نشناختم استاد شما هم اشتباه کرده ببخشید خانم, خانم هم هم کسانی که پابند به اصولی در زندگی نیستند و از این شاخه به آن شاخه میپرند همین همینطور فکر می کنند. آقای نازم، خواهش میکنم حرف های شاگرد مدرسه ها رو به من نزنید. قبل از شما کسان دیگری هم این پرنسیپ ها را رو به رخ من کشیدند. دلیل ندارد که آنقدر مرموز باشید. مرا مسخره نکنید. خواهید دید که اینطور نیست و وقتی من هم همین است. این جمله رو با چنان لحن قمن گیزیادا کرد. که متاسف شدم و از نیشی که به اوزده بودم پشیمانی به من دست